دوستان من مهدی هستم و شما در حال گوش دادن به چهارمین قسمت از پیا پادکست در تیر ماه 1400 هستید. در هر قسمت از این پادکست من به همراه آرنج با توسعه دهندگان و مشارکت کنندگان یکی از پروژه های مرتباز به گفتگو میشینیم. در هر گفتگوها سعی میکنیم علاوه بر پرداختن به تجربه کار بر روی یک پروژه متباس از چالش ها و مسائل فنی هم صحبت کنیم. مهمان این قسمت از پادکست پוריה است. پروژه داره به نام کات که پروژه رایگانی برای کوتاه کردن لینک هاست. پوریا از ابتدای مسیر یادگیری خودش کات رو آغاز کرده و تجربیات زیادی کسب کرده که ما سعی کردیم در این قسمت این تجربیات رو منعکس کنیم. مثل همیشه برای اطلاع از قسمتهای جدید میتونید پادکست رو در تلگرام و توییتر دنبال کنید. این شما و پوریا از پروژه کات. مگه قراره یک کم خودت رو و کنی؟ بله اسمم کیپوریا، <تصفيق> 26 سالمه، تو حوزه وبینار کار میکنم بوده 10 سال کمتر. چند سال اش دیگه حرفه‌ای بشم؟ فکر کنم 4 4 سال. اولش با دیزاین شروع کردم، علاقم دیزاین بود، خیلی حرفه‌ای نبود، خب یه خورده فتوشاپ رو یاد گرفتم. بعد HTML CSS یاد گرفتم، یه خورده وردپرس یاد گرفتم. ولی جدی بخوام بیام سمت نویسی هم حدود چهار سال پیش بود که جاوا اسکریپت یاد گرفتم در کنارش ریاکت یاد گرفتم و شروع کردم به زدن پروژه‌ای که علاقه دارم به سمت اوپن سورس اولین کارم هم توی استارتاپ ایرانی بود حدود یه سال اونجا بودم از اون بعدم ریموت کار می‌کنم دو سه سال تا الان دو تا نکته خیلی جالب داشت صحبتت اولین که گفتی پروژه اوپن سورس کار میکردی. یعنی از همون اول پروژه اولیه که کار کرده اوپن سورس بوده، مزروت چی بود؟ یعنی هیچ شغلی نداشتم. یعنی آره هیچ شغل رسمی است. تو اون،, اون لحظه نداشتم. میخواستم برنامه بگیرم. گفتم چیکار کنم. می‌نامم ای خودگشتم. می‌نامم. میخوام خب یه چیزی درست کنم که علاقه دارم. مثلا موسیقی بود. سعی که درست کردم. گفتم خودم طراحیش کنم. می‌خواد بگیرم. فیگما و ادوبی ایکس یاد بگیرم بعد گفتم با ریاکت بزنم که خود ریاکت یاد بگیرم یه خورده سمت سرور و جی یاد بگیرم و خب چیکار میکردم کدش هم گذاشتم کنسولس برگردتون ببینن اینکه ای خود بک اند میزنم به خاطر شغلمه هنوز اون تراکیای خورده بیشتر دوست دارم چون دوستم چیزی که خودم دوستم خلق کنم اینا ولی خب اون تفکر منطقی و برنامه‌ریزی و لاژیکال خیلی سمت بکند خیلی بیشتره و خود سمت فرانت هم میخورده تو بسریه یا ایناس میگه خب من جفتش هستم همزمان و تو خودش کمپانی که هستم سویچ میکنم معمولا مثلا یک ماه روی یه چیز فکوس میکنم یک ماه رو بکند شاید فکوس کنم یه چیزی که خیلی جالبه اینه که تو با اسکریپت شروع کردی پرویا بعد چی جوری بود؟ <تصفيق> من نه چه انقدر بعد میگم من واقع اسکریپت تنها زبانی که بلدم من خیلی زبان برام مهم نیست صرفا اون نهایی برام مهمه حالا با هر چی که شد و چون کارهایی هم که می‌کردم تحت وب بود خب جاوا که گزینه اولام بود و برش اوکیه ولی حالا نکته که هستنه که, که با همین چیزی که بلد بودی تونستی پروژه خیلی قشنگ و زیبای بالا بیاری به نام کات که الان دلیل هم که ما اینجا کنار هم هستیم همونه و میتونی معرفیش بکنی یه مقدار به صورت خلاصه؟ آره خب اول بگم که چرا ساختمش من یه من می‌خواستم برنامه‌نویسی یاد بگیرم گفتم که یه کانال تلگرام درست کنم و برای خودم مطالب بفرستم برای ام... که... همه بفرستم که خودم که یادم میونه و بخونمش و این کانال کم کم کانال اینترنشنال هست یعنی و فارسیه و انگلیسیه کم کم خیلی بزرگ شد صف کار دوزار 2000 ممبر بعد خب لینک هایی که کوتاه می‌کردن و خب از کوتا کننده لینک گوگل استفاده می کردم و دیدم یه سری محدودیت داره اون موقع هنوز سرویسش بالا بود گفتم خب من که چیز بلد نیستم نو اینا خیلی بلد نیستم خیلی وقتی هم از چیز طرائی نکردم یکتم خیلی چیز بلد نیستم تایپ اسکریپت هم بلد نیستم بیام اینو همین جوری پیاده سازی کنم یه چیزی مشابهش خب همین چیز یاد میگیرم و یه چیزی هم هست که میتونم استفاده کنم و هم تا میسه امکانات بهش اضافه کنم مثلا اینکه از کدوم کشور دیدن چه جوری دیدن و خیلی چیزها میتونم ببینم آها اون موقع با دیتابیس آشنایی داشتم و کمک کرد که به کلا اسکیما و اینا دیتابیس یاد بگیرم این پروژه رو من موقعی داشتم کار میکردم به عنوان سایت پروژه مثلا موقعی خونه بودم روزی یکی دو ساعت نگوش وقت می‌نشستم خب تول کشید مثلا طرحش چیزی نبود که بخوام کل در روز روش تمرکز کنم آره اول طراحی کردم بعد توی پروانتو بکش رو زدم و کنم تا الان چند با کردم دیتابیسش عوض کردم یعنی از نو فورجی رفتم مانگو دیبی و از اون رفتم پس بعدش این پرژه رو شیر کردم توی کانالم و توی چند تا شاکه اجتماعی و رفت توی ترند گیت هاب و هکه نیوز و من منم مغز... واسه من خیلی تعجب کردم که چهجوری رفت ترندینگ و اینا مثلا اون موقع دیگه استو 100 تا استار گرفت بگم من خیلی زیاد بود و اما که رفت ترندینگ همینجوری رفت بالا و الان فکر کنم بعد فکر کنم 2 سال شده طبق هر داستان دیگه ای از همون نیازمندی خودت شروع شد دیگه چقدر وقت گرفت تقریبا از اون نسخه اولیه‌اش زنم دقیق نمیشه بگم تو ساعتی بود مثلا یه هفته روش کار نمی‌کردم ولی خب اینجوری بخوام حساب کنم از موقعی که استارت کردم تموم شد شاید سال 2 ماه پروژه تایپ اولیش که اومد بالا وشر کردم حالا از اون موقع هم که حالا این و دیگه پچ زدم و یه خورده رو بهتر کردم میگم دو سه بار کردم آره، در چیزی که لا من کلون کردم و نگاه کردم میگه خیلی تغییرات توش زیاد داشتی. مثلا دیگه که خودت همشای کردی، مونگو دیوی استفاده می‌کردی، نو فورج استفاده می‌کردی بعد حالا دیگه در نهایت رسیدی به پستگرس. اینم یه کوچولو توضیح می‌دی که چی شد که اول از اون استفاده کردی بعد رسید به اینا، حالا در نهایت دلیلش چی بود که آخرش پستگرس استفاده کردی؟ چندتا ادمین داش کانالم از کشور مختلف ازشون سوال پرسیدم که به نظرتون این کار که میخوام بکنم کوتا کننده لینک چه میخوام این کار بکنم ها توصیه کردن که خب چرا به گرفت گراف ها نگاه نمیدازید بله این من میخوام استاتس رو جمع کنم مثلا یک کسی که روی لینک کلیک میکنه از کدوم کشورت براوزرش چیه اینا و خیلی نودهای مختلفی میشد که به هم دیگه رب داشتن و وقتی میخواستن آمار نهایی رو به کار با نشون بدم یه جوری بعد اینا رو مثلا جم می‌کردم که بتونم بهش نشون بدم که چه اتفاقی دار می افتد آره اینا بهم توصیه کردن که یه نگاه به گراف دیتابیسا بنداز نو فراجی خوب و من که با دیتابیس مانگو دیبی تام گفت کار کرده بودم خیلی این حالا بلد نبودم گفتم اوکی برم ببینم چه جوریه استفاده کردم خوب بود تا یه جایی, تا جایی, تا جایی, تا جایی که یه خورده کات محبوب شد آمور بازیش رفت بالا و یه دلیل اینکه نیوفورج کم اوورد شاید بخاطم این حالا من برایت نمودم استفاده کنم و یه برد ولی خب یه جاهای دیگه مثلا کات, کات کم میوورد لگ میشد یه،, یه سری کمپانی هایی که ازش استفاده میکردن مثلا هزار یوزر در لحظه شد میکردی روی کلیک لین و کامونم رایگان کات حالا نمی بگم من استفاده میکردم و منم خب وقت زیاده ناشتم ولی دیگه چیکار کنم هی hey, این نیوفورج رو پرفورمنسش بردم والا هی بهتر شد هی تعداد یوزرها بیشتر شد دیگه یه جایی دیدم که واقعا نمیشه و تصمیم گرفتم مانگو دیبی ببرم بعد دوباره همون دوستانی که من پیشنهاد دادن نیوفورج استفاده کن گفتن اس کیو رو نگاه انداز. من پستگرس نال کردم اسکیلا هیچ چی نبودم کلاً اسکیما دیتابیس رو عوض کردم و بردم وب پست کرد. این باز خورده چطوری به دست رسید که مثلا کاربرا میگفتن ما اینجا لگ داریم یا اینجا نمیتونیم ایشو باز میکردن یا چطور به این مؤدبی نبود ایمیل میزدن گفتم سایت داونه ما نمیدونم مارکتینگ کردیم چرا یوزر رد نمیشن و من هم مثلا تو تاکسی رفتم داشتم میوردن که اینا با چی شده و امیدم که خیلی از مشکلات دیتابیس و به خاطر همین آماری بود که جمع می کردم. از طرق ایمیل بود، پایین صد یا ایمیل هست، میل راست تحت ساب دومین تحت خود دومین کات. ولی بله مثلا اونایی که اونایی که ایمیل می زدم، اگر خیلی تیز تکنیکالی بود، می گفتم ایشو باز کن من برست است کام لینک گیتاهو می و اونجا ایشو باز کرد. یعنی مستقیمن بهت ایمیل میزدن که آقا ما مثلا لینک ها باز نمیشه مشکل داریم چی کار میشه کرد چه چالب یعنی با یه سازنده پروژه اوپن سورس اینطوری تعامل دارن که آقا پروژه کار نمیکنه و یه مسئله دیگه هم که اشاره کردی راجع به این بودش که رفتی سراغ پوستگریس چون من میدونم یه سری اسکریپت های هم داری از نو فرژه به پروسه چطور آره این خورده خیلی اینم طول کشید و سخت بود شما نه نه خیلی خلاشی داشتم نه اسQL می دونستم خیلی چیه حالا چه بررسید به خود پاسکررس اولین کاری که باید میکردم کردم این بود که اول یه اسکیموی جایی تعریف کنم برای کل چیزایی که داشتم چون دیدم تا الان خیلی خوب کار نمیکرد. این اسکیموی جایی جدید اومدم با حالا تفکر دیزاین پترنی که اسQL داره اومدم تو اون پیاده کردم. قبلا قبلنم خیلی سمتش نمیرفتم تو فکر کردم که خیلی ارتباط پذیر نیست مثلا اول رفتم سمت ماگدی چون گفتم خب جیسون رو مثلا تغییرش بدم و چون مثلا لیست کشورها رو که نمیتونم بر... نمی بر هر کدوم یه دونه ستون بسازم خیلی جا میره می تو تیبل و خب جیسون باشه که هر کدوم هر تعداد مقداری که دارم بگیرن خب خیلی اینجوری از لحاظ سایز و پرفورمنس بهتره بعد دیدم که خب پُستگرِس اینو ساپورت میکنه شروع کردم اسکیماهای جدید پیاده کردن صرفاً یه کوئری بیلدر استفاده کردم شروع کردم با پُستگرِس نوشتن همزمان فکر کنم بک اندم جاوا خالی بود یه تبدیش کنم به تایپ اسکریپت آپدیتش کردم بعد گفتم حالا من چجوری فکر تا اون لحظه مثلا حالا بزنیم 500 هزار تا لینک کوتاه شده بود حالا من اینا رو چجوری بیارم تو من خودم سر اون تحقیق کردم و استک باز فلوا کردم و چند نفر داشتن از از نیو اونجا جواب دادن که تونستم حالا یه سری فانکشن بنویسم که از نیو ببرم به پستگرس یه سی ماگریشن اسکریپت نوشتم برای بقیه اه... گذاشتم تو گیت هاب نام گذاشتم سه تا من سری مثلا برای دیتابیس من که دیگه فکر از همه بیشتر بود و اون همه لینک داشت فکر یه نیم ساعتی مثلا دیگه حداقل اکثر طول کشید که کل دیتا رو مالریت کنم از اون سمپین سم توی پروداکشن. یه yeah, مورد دیگه می‌خواستم پروژه ازت بپرسم اینه که با توجه به اینکه الان تعداد سرویسات خیلی وقت‌هاس بالا هست و رایگانه دارن استفاده میکنن، این هزینه های جانبی که داره مثل بالا نگه داشتن کوده، گرفتن سرور این اینا چه داره تامین میشه؟ خودت داری هزینه کنی یا نه سپانسر چیزی داری؟ نه خودم دارم هزینه می‌کنم فعلا رایگانه خب خیلی ایمیل میزنن که چون یه سر محدودیت دارم مثلا وقتی خم پنج ساعت لینک بیشتر میتونم بسازن و وقتی که میخوام بسازن بیشتر بشم پیام میتونم ایرانش میده که آره شما فریلیمته مثلا تموم شد ایمیل بزنید من اگه میخواید محدودیت من برداشته بشه و خب اینا وقتی من ایمیل میزنم مام جواب میدم که آره ولی خب هنوز بلنده پولیم آماده نیست مثلا سرکم با همین تا آماده شد خبر و من یک سال نیمه دارم به این ایمیل ها جواب میدم و بعده چند, چند وقت ایمیل ها میخورم دیر به دی چک کردم مثلا چند وقت پیش دیدم که چه شدم از شعبه والمارت مثلا برزیل میخوان ایمیل سازن که ما سالیانه 10 میلیون لینک میخویم چقدر میشه و من کل لینک هایی که مثلا تا الان تو کاته یک میلیون و من با سه ماه تاخیر چند ماه تاخیر جواب دادم که آره پِی پلن ها به زودی میاد منتظر آره هزینه اش هم خودم میدم یه وی دارم یکی دیگه third است. ستا VPS دارم برای دیتابیس و من یه سوال زرد بپرسم. این چه داشته تو هکر نیوز تو کیتوب ترند شدنه؟ تو هکر نیوز خود پست کردی یا اینکه کسی دیگه پست کرده؟ خودم پست کردم. هم موقع که ها نه یه بارش خودم پست کردم. موقع که رو کرده بودم تو یه ریدیت پست کردم و تو هکر نیوز. فکر خیلی بیشتر. تقریباً چون موقع سر این دو فکر کنم موقع خیلی توجه گرفت. و باز شد تو ترن شد تا اینکه فکر کنم پارسال بود دیدم یه یهو استارهای کات داره میره بالا رفتم گفتم چی شده دیدم یکی تو هکر نیوز باز منتشر کلینکر گذاشته طرف خودش دستش در نکنه کی بود و این دوباره تو هکر نیوز تنشه شده بود بعد روی تایپ اسکریپت رفتنه دلیل احساس کنم شخصی خود بود که ترجیح تایپ داشته باشه احتمالاً اول من تقات تمام کاریک کردن این بود که یاد بگیرم و خب بیکار بودم گفتم خب یاد بگیرم خوشم میاد یه چیزی هم یاد میگیرم ولی خب واقعا تایپ اسکریپت خط تصمیم خوبی بود به نظرم یعنی اصلا تاگوند بدون تایپ اسکریپت واسم دیگه غیر ممکنه غیر ممکنه خب خیلی سخته خیلی کارا راحت بعد الان با توجه به این استقبالی که از پروژه شده خیلی برام جالبه که مثلا اتفاقات و پیام ها یا موضوعات و کانتریبیشن های جالبه بوده که تو ذهنت بولت باشه الان که آقا ام چه ایشوه خوبی چه کانتریبیوشن خوبی یا چه ایمیل عجیبی اخیراً خیلی بیشتر شده بود دیدم یکی اومده بود که مثلا کلا تست نداشته بودم من تست برای قبلی نمیشه بودم قبل اینکه ریفکتور کنم و خب اون دیگه غیر قابل استفاده بودم و کشون کرده بودم و دیدم یکی اومده کلا مثلا بیسیک تست و با چند تا از کامپوننت ها اومده تست کرده و پول کوست گفتم بدنت که تو سه ماه خودم برای کات،, کات کات نزده بودم شرمندن کردید از لحاظ مثلا آره اگه سری پوریکاست ها اینجوری میگیرم جدیدن اگه سی ایشوه جالب میگیرم چیزایی که فکرم خطور نمیگرم داکرم من کلام بلد نبودم و انقدر تغاظه شد و خیلی اومدن راهنمایی نمایی کردن پوریکاست ها ایشوه زدن که داکرش همون رو کردم کردن یعنی حتی اومد اصلا گیتاب اکشنز همان استفاده نکردم داکیا رو ورس کرد به گیتاب اکشنز که من هر موقع مثلا پوش میکنم خودش اوتوماتیک بره برای سیسامون هر مختلف فیلپ بگیره بردم که مثلا این پوریکاسته بود یه چیز بلده دیگه هم که یادم این بود که یه باز کردم ایکی گفت که کات um, توی OSS Awards، Open Source Awards میاد که چیزی نامزد جایزه یه بخش کاتگوری شده. من فکر کنم یه در مسره میکنه، باز کردم نیان. یه سایت واقعیه و یه... ها. گفت که بیا حضوری هلند و تو این کنفرانس شرکت کن قبل کرونا بود. <تصفح> و من که نمتنستم برم، گفتم خیلی ممنون و خب لایه دیدم ات جایزه نبود، تو هر، فکم خب چهار تا پنج شرکت کاتگوری بود. برای من در کار مثل لایبری خیلی خوب بودن که اون زمان استفاده می‌کردم مثلا خودم در کانون دیدم خیلی جالب و یکی دیگه بود ولی خب هم که نامزد شدم با اون اسمو خیلی خجالت ای که بوده خیلی پروسه قشنگی بوده به نظرم چون که هم اه, یعنی همون چیزی که من واقعا بشه اعتقاد دارم کانتیونوس امپرومنت اتفاق افتاده یعنی هم نم نمک خفتی جلو و یه سر چیزا اضافه کردی و یاد گرفتی و هم بقیه هم مشارکت کردم. اتفاقا من اون سایت دعا اصلی که چنل های تلگرامی تو اونجا گذاشته بودی رو داشتم چک میکردم بعد جوین شدم به یکی از چنل ها و خب تو توی سایت تعداد ممبرای های رو میذاشتی بعد میخواستم چک بکنم که ببینم حالا این مثلا آتوماتیک هست یا نه که بعد دیدم نیست بعد نگاه کردم خب مثلا میشد اینا مثلا دقیقا با های اکشن گیت اینا ها مثلا هندل کرد که حالا هر وقت مثلا دیپلوی می می‌بعدم مثلا اسکریپت نوشتی بعد گفتم خب شاید نمی‌دونستی اینا اومدم برداشتم این پروژه چک کردم دیدم اتفاقا اینجا اومدی استفاده کردی پس دلیلش این بوده یعنی خود این آره. اکشن این ریکوست جدا البته اون اسکریپت من ننوشتم چون فکر کنم باشه اون اسکریپت چون بلد نیستم بش خیلی زیاد یکی از ادمین های کانالم ام خیلی شاکی بود که این چرا آپدیت نمیشه؟ <تصفيق> چون حالا چرا آپدیت نمیشه چون که من برم گردیم به اون چیزی که بحث با شروع کردیم جا استفاده میکنم برای اون سایت که سط خیلی که شاید به نکس جرسی رو نیاز نداشته باشه و کاا یه شماره رفت بالا این ویژنشش و دیگه این بیت نشد و نتونستم هیچ تغییر بدم و یک سال بهش دست نسادم. و برای همینم هم یه کد ج برش اسکیپ نوشته که یه سر فایل جייסون آپدیت کنه که اون سایت حداقل دیتا خوب نشون بده کانال تلگرامی که گفتی زدی به نظر خیلی نقشه مهمی داشته تو هم شکل گیری این و هم پیشرفتش راجب خود همون کاناله که میتونی بیشتر بگی گفتم یه روز پا داشتم گفتم که من میخوام فلان مطلب بخونم چیکار کارم که انگیزه داشته باشم نه گفتم خب یه کانال درست می‌کنم هم بگرد بخونم هم خودم بخونم این کم کم ممبرز زیاد شد مثلا یکی 2000 تا شد شروع کردم به گروه ها رو زدن حالا گفتم که اینکه تا اینجا اومدها گروه هم بذارم تو اونم صحبت کنم خب خیلی قدیم افتادم 2017 اینا باشه بعد که گروه ها زدم تعداد حالا از گروه رفت بالا گفتم حالا من اینا رو مدیریت کنم یک سری که دو تا از اعضای فعال گروه مثلا گفتم که آره دوست یادش میش اونم گفتن آره از اون موقع هم تعداد ادمین‌ها زیاد شد مثلا 15 تا اینا شدیم هم تا گروه ها زیاد شد و حدود کنم 25 تا بیشتر گروه معمولاً برای هر زبان برنامه‌نویسی مثلا میزی درست کردم یه گروه عجب چه مسیری به نظر من اصل ترین نکته همین استمراری که داشتی و اینکه تونستی تو این پو مسیر پیش بری و زنده نگهدار پروژه رو همین ذره ذره حتی سالی یه ذره آپدیت کردنش هم هموناً نظرم کلی پروژه داریم که یه ماه شدید روش وقت گذاشتیم کار کردیم بعد دیگه الان میدونی آ یه آپدیت خیلی ریزی میتونه اون رو زنده نگه داره ولی همون رو قدریق می‌کنی آره خب یه مسئولیت هم به من ایجاد کردی یعنی مثلا اولیت اینم یه سری کمپانی‌های ازش استفاده میکنم و یه همچین ایمیل ایمیلای میاد سمت من که یا چرا کار نمی‌کنه یا اینکه آقا پلن پولیش چی شد ما فلان لینک می‌خوایم فلان وقت فلان میخوایم خب دیدم که انقدر چیز داره و مجبورم که مجبور هم مجبورم و هم علاقم علاقم دارم وقتشو خیلی زیاد ندارم ولی خب تا جاک بتونم مثلا کنم که آپدیت نگراستم دقیقا خوبی دنیای اوپن سورس به نظرم همینه دیگه تو از طرف بقیه افراد پوش میشی این پروژه رو حالا حالا با همه هایی که داری، ولی همین که ایمیل دریافت می‌کنی، هی با تو ارتباط میگیرن آقا اینجا مشکل داره، اینجا رو درست کن، این فیچر رو اضافه بکن، این کامیونیتی داره تو رو پوش میکنه که ادامه بدی. و این این خیلی بنظر تأثیرگذاره. تجربه خیلی خاصی داری در این زمینه که مثلا یه بار شده که مثلا به تو مراجعه کرده باشن و تو مثلا خیلی سریع ریاکشن داده باشی یا خیلی برات اهمیت داشته باشه؟ آره میگم خیلی روزا خیلی روزا که چند بار پیش اومد مثلا من تو تاکسی بودم شاید یه چیز کوچیکی بود همون لحظه سریع رفت میشد ولی خب دیدم که برای اون انقدر اهمیت داره و من اهمیت داره ربطت در می آوردم خیلی جایی که لازم نبود ولی خب کار دیگه هم داشتم کنار اون لیزرم تمرکز کنم که اون چیزو که کنم فیکس کنم و حالا این open source چه تاثیری داشته آره واقعا این کاستریشنه خیلی ولی خب به نظرم خودم خیلی بیشتر چیزی که من گرفتم به نفع من شد خیلی بیشتر از اون چیزی بود که دادم تنی و تن یعنی حتی کاری که پیدا کردم چون کار مثلا ریموت بود مثلا می گفتم که هم فلان شایی ایرانی کار کردم خب نمیشناختم ولی خواهی از کودی که روی گیت ها بود و کانتروبیوشنی که انجام شده بود بیشتر که مثلا کاری ما پیده. یه جورایی رزومت میشه دیگه عملاً آره دقیقاً به جای که دیگه مثلا چه برای تو بخوان چالش کد بفرستن و تو خود تو بخوای نشون بدی حالی چجوری کد میزنی و اینا مثلا ریپورتو که ببینن کامل میتونن باه آشنا باشن و با سبک بشن که تو چطور آدمی هستی و چجوری در هوا کد می‌زنی حالا الان خودت آینده پروژه رو چطوری می‌بینی آینده پروژه بعضی الان تو سطح خیلی استیبلیه. در اسمی دارم این حالا که تا بوده و فعلا تنها مشکلش که پلن پولی باید اضافه کنم که اونم سعی میکنم <تصفح> وقت کردم اضافه و اینکه حالا در حد نکته هست به نظرت مونده باشه که ما نپرسیده باشیم راجع به پروژه یا نکات خاصی که یا تجربه خاصی یا چالش خاصی که تو ذهنت بوده و شما نپرسیده باشی جمعون نمی کنم حس میکنم تمام نکته مهمش رو گفتم من که خیلی چیزه کوچیکش دیگه <تصفح> مونده <باشید. تصفح> ببین همونجور که میدونیم پادکست برای اینه که کمک بکنیم محتوای فارسی تولید بکنیم و بچه‌ها رو در واقع بکنیم که بیان تو این فضا مشارکت بکنن. ای و افرادی که میخوام تازه وارد بشن داری؟ چیزی که من میتونم توصیه کنم چیزی که خودم تجربه کردم و اونم اینه که به چیزی میخواید علاقه دارید، می‌خواد بهش علاقه من بشید، یه پروژه می‌خواد پیاده کنید یا زبانی می‌خواد یاد بگیرید هرچی واقعا میتونید به صورت اوپن اول چیزی که مثلا این من میخواستم جاوزکی پیاد بگیرم میگفتم که خب من چه چیزی دارم ببینم تو وب که الان نیست اون رو سرمی کردم با حالا ابدارهایی که هست زمانه برنویسی این رو چیزها پیاده کنم یعنی یه چیزی باشه که خودم بدونم خودم بتونم استفاده کنم یه چیزی نباشه که خوان توسط استفاده کن خب چرا بعد بعدین استفاده کنم یا رید میش مثلا ناقص باشه من هفتاد بیام اینو بخونم این اوکی نیست خب چرا بعد بعد این کار بکنم بخونن تا یه حد قابل قبولی که قابل استفاده باشه و چیزی باشه که باشه علاقه داشته باشم میتونم اینطوری هم به اوپن سورس کردنش یه چیزی یاد بگیرم و همین که خب بقی هم میان فیدبک میدن و اونم همش استفاده کنن و این حرف که زده جالب بودش که در واقعی جورای به این امکان رو میده که در یک کامینیتی قرار بگیره که به قول خودت آدم دوست داره یه چیزی منتشر کنه برای اونا آره, آره. میه من چشم داشتی نداشتم که حالا از این کار پیدا میکنم این دیروت که خوبی بزرگ شد و گفتم که حالا اینم هم هست دیگه حالا دقیقه من خودم به شخص نگاه خیلی دوستم پیاؤ توی لحظه کار درست رو برای ه تو دیگه نیازمندی داشتی میخواستی چیزا یاد بگیری، یه جمعی هم بوده و رفتی و این رو انجام دادی. خیلی نگاهت من به این قضیه خیلی دوست داشتم و نکات خیلی خوبی هم گفتی که آقا کاری که میخوای انجام بدی پالیش شده باشه، ترتمیز باشه، سیق خورده باشه. حالا میگم کامل باشه، ولی آره سیق خورده، یعنی یه چیز کوچیکی باشه ولی خب ترتمیز باشه. مثلا من کات کردم، خیلی چیزا نداشت. یعنی حتی ساده‌ترین نقشه که نشون بده یوزر کدوم کشورن نقشه نبود مثلا یه بار بود چارتی بود که چارت بارها رو بشمین از اونا بود نقشه کشوری نبود خب مثلا چند محتیل کشورنو اضافه کنم خب یه خیلی از چیزه بیسیکه که که داشته باشه ولی خب من با ساده تاین تا حالات ممکن رفتم ولی همون ساده این حالات ممکن تصمیم گرفتم که می دوست داشتم که هم یه خورده جذاب باشه خوشگل باشه کودش باشه. و ریدمی خوبی داشته باشه کامل نباشه ولی خب اوکی ترتفیس بسیم مینیمال میتونی شروع بکنی به نظر من واجه مینیمال خیلی, آن خیلی آن... تلاش کردم MVP رو نگم یه مفهوم من بهش میگن نه من MLP میگم نمیدونم مینیمم lovable product یعنی اون حد حداقل پروژه کوچیکی که میتونی درست بکنی یا دوست داشتنی باشه به نظر من این مفهوم جالبی بیادم خیلی نکات خوبی گفته آقا به خود از کار مسئله که اشاره کردی به نظر من خیلی جالب بود. پروژه خیلی خوبی هم هست. کات بچه میتونم میتونن برن اگه بتونن مشارکت بکنن. و نگاه بکنم خیلی خوب و ترتمیز نوشتی. به نظرم علاوه بر یادگیری هم میتونه جالب باشه. و اینکه تشکر ازت که این وقت رو گذاشتی با پاتکت سامادی صحبت کردی و من خیلی لذت بردم. آره واقعا دست درد نکنه تو قسمت ها رو واقعا پوشش دادی جا برای کار همونجور که خودت میدونی هست زیاد هست به نظر من هم خیلی عالیه از جاهات مختلف از لحاظ فنی خیلی خیلی خوبه دست درد نکنه امیدوارم که تو آینده هم بیشتر بش برسی وقت کنی بیشتر دقا انرژی صرفش کنی و ممنون که اومدی و شرکت کردی دست درد نکنه ممنون همچنین خوشحال هم شدم از صحبت با و امیدوارم که شما هم خوششون بگرد و به دردش